و سوالی آمدی که در نماز عید خطبه قبل از نماز است یا بعد حالا خطبه را همین بعد نماز می‌خوانند حالا کجا عل خطبه قبل نماز خوانده شده حالا بعد نمی‌دونید اما این سخنرانی‌های قبل از نماز این سخنرانی‌ها دیگه سخنرانی‌ها معصننت نیستن واجب نیستن اینا ده حد جوازن حد جوازت سنت واجب نیستن اما این در زمان این شروع شد زمان تابعین شروع ان که مروان بن حکم بود ان که اگر اشتباه رو یک از حکام بود قلا وقت نو عید قبل از اینکه نماز بخونه رو بالا منبر یک ساده شو گرفتش به پای رپای گفت نه گفت آوا من حله خطبه نخونه استخراانی نکنه بعد به ما قص حرفا بر چون مردمی زشت میرفته؟ حالا چون خطبه برخفی خطب میرفته حالا قبل از اون دیگه خطبه رو خون خودی خطبه زمان صحابه بود حاکم بود دواره همین سور روال روا در دنیا ما کران بیشتر ها دواره فتوای کفر کسی را صادر نکرد نه او فر بدتی انکار کردی کارونکو اما خود به سخارانی کردن حالا این سخارانی قبل از واجب نیست سنت هم نیست مستحب هم نیست جایزه. کسی سخارانی که مسائلو بر مردم طبیعی که اشکال نداره اما اونهایی که ایراز میگیرن که خود سخارانی های شما قبل از نماز خلاف سنت ها ما میگیم سخرانی تو هم بعد در خطبه خلاف سنته برای فارسی سخرانی میکنی پیغمبر فارسی نکرده ولوچی نکرده عربی سخارانی کرده و خطبه با عربی باشه در حال اگر در مسجد النبی و, و مدین منوره فرقه های مختلف مختلفی می م و و فود بود ان از هر طایفی میآوند از حبشی میآوند از جهات دیگر میآوند و نبی مکرم صلی و ترجیح هم داشت صحابی رومی اونجا وجود داشت رومی میدانست زید بن صابیت زبان ابرانی یهودی ها را یاد گرفته بود سلمان فارسی فارسی بی زولیس زمانی که از هر طرف انسان یومد خطبه نبی کریم اونجا وحی الهی بود همه احکام مسائل بوده اما کسی لو حالا لوح سخرانی ما رو ترجمه کنم این چیزو نکرده پس هزاراش هم رد کنید و رو عربی بکنید اجازه ثخرانی فارسی نه چون در احادیث کل احادیث نگاهی کنید از زبان نبی کریم زمان خلفای راشدین و بعد زمانی که فتوحات زیاد شدن امپراتوری‌ها شدن بلاد اجن فات شدن صحابه کرام وارثو نوازیت می خوندن اما هیچ جاس خرانی ها و خطبه ها رو ترجمه نمی کردن خطبه ترجمه نشود حالا شما لطف کنید بگمونا عمل کنید سالف صالح مونا هستن چرا یه صادر بری بر منبر بی تاجدو میکوبیدو فتواهای توچینی هم صادر میکنید این فتوها ها رو جا ندهید چون تعالی بقر گیر میکنید برای خود اول جواز بیاورید جواز کار خود رو پیدا بکنی